بعد گفتن که توی روایاتی داریم که بر حضرت زهرا سلام الله ها مکررد جبرهی نازل می شده این درسته؟ بر لذا یکی از نام های حضرت محدثه هست حدیث می کرد خودش قال الله تبارک و تعالی بعد فرمایش میکردن کردن امیر می املا میکردن هجره بزن مردی بودن دوتا یعنی امام محصوم از قول خدا کلام همسرشون او اون می شده و ایشون کاتب بوده جو این گونه روایتی که هردش و جایگان حضر زهرا رو بر ما بیان میکنه ما باید چه استفاده کنی؟ یعنی هدف چی بوده که حضرت زهر و سرمون علیه یه شخصیتی داره در قیامت از قول پدرشون این روایت هست که حضرت فرمود ایشون وقتی همه انبیا همه ارسیا از نجات بندگان خدا میمونن حضر زهره کارشو شروع میکنه قید نزدن که حتی پیغمبر در همه انبیا و همه اوسیا وقتی در کاری بندهی میمونن برای نجاتش و کاری نمیتونن بکنن حضر زهره برای اونها میاد خیلی مقامش بالاست. اونایی که حواسشون جمعه در دنیا و بایشون با اونس میگیرن بهره میبرن بهرهای خاص میبرن امه ایشون ریشه هست همه بر یعنی ساختمان ولایت بر ایشون استواره هندسیونه چا از اونس با ایشون چیه؟ مادرجان مادر مادرجان <متصفيق> چی تو رادم مادرجانه سخت میشه صدا میزنه؟ بعد با اونس برای سر زندگی